اللهم صل على فاطمة و أبيها وبعليها وبنيها واستر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم طب المعصومین صفحه 153 الخلق خلق به معنای ایجاد خسلتها خسلتهای پسندیده یا خسلتهای ناپسند همچنین ایجاد صفتها صفتهای حمیده یا صفتهای رزیله همچنین ایجاد اخلاقها اخلاق حسنه یا اخلاق سیعه همچنین معنای ایجاد رفتارها رفتارهای مثبت یا رفتارهای منفی پس کلمه الخلق الفلام، الفلام جنس تو شاخه های مختلف علوم مورد بررسی قرار میگیره تو علم اخلاق، تو علم رفتارشناسی، تو علم روانشناسی و روانشناختی مؤمنون و تو بحثای علوم تربیتی همه این مورد بحث قرار میگیره تو بحثای خرد و خوراک و بحثای تخصصی تغذیه هم مورد بحث قرار میگیره که الان میخوام یه مقداری بخونیم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الخلق السیء الخلق سیعو یفصدل عمله كما یفصدل خلو العسله کما یفصدل خلل عسل اخلاق بد اخلاق ناشایس، اخلاق ناپسند رفتارهای منفی خسلتهای بد صفتهای رزیله عملهای خوب انسان، کار و خوب انسان، عمل بر، عمل صالح اینها رو چیکار کنه فاسد میکنه، ضایع میکنه. کما اینکه سرکه اصل رو فاسد میکنه. که بحثشو قبلا مطرح کردیم و گفتیم از باب دفع افسد به فاسد گوی جنبه کاربردی داره، تو ته ده روز رو مطرح کردیم. این روایتی که اینجا هست تو صحیفت الروا علیه السلام در سه جا هست. کتاب یک قسمتش فرموده. صفحه 65 و, و صفحه 108 و, و صفحه 117. پس در صفحه 108 و, و صفحه 117 هم آمده در صحیفت الروا. که چاپونه اشتباه کرده بقیهش نیموند. همچنین مؤمنا به صورت های دیگر هم این روایت اومده مثلا در کتاب کافی شیخ کلینی جلد دو صفحه سی سد و حدیث یک اول روایت اینجوری اومده ان سوء الْخُلُقِ لیفسد الْعَمَلَ اِنَّا آورده حروف مشبهتون بال تاکییدم میفهم و لام تاکید او و یفت صد دو این ننسوع خللقه و عمله شما یفت صد دل خل اصله. اینم در شیخ کلی اصول کافی جلد دو صفحه ۳۱ حدیث ایک. یک. یک مدل دیگه روایت داریم. و اون اینه کسی که یکی از افراد اخلاق سیئه و صفات رذیلت چیه غضب بیجا کسی که اعمال غضب بیجا کنه عملای خوبش فاسد میشه مثل اینکه سرکه اثر رو فاسد می کنه اینم سندش کتاب اصول کافی جلد دو صفحه سی حدیث یک چاپ اسلامی تهران. القواب الفلام معهود ذهنیه یعنی قذب بی جا قواب بی جا داریم مثل اینکه تو جبهه جنگ نگاهت متمرکز باشه به چادر فرماندهی دشمن و تا چادر فرماندهی دشمن و خیمش ننداختی زمین ها عقب گرد از جبهه نکن زیرا که فرار از صحنه جنگ حرامه القوابو حالا بحثمون تو قذاب بیجاست مثلا یک کم استقام میابتو رو زمین شق محکم پسکله میدنی پسکله بچش مثلا بچه مردم حالا استقامشی کرد و یه استقام دیگه میخری این مثلا تعدیبش که نباید پسکلهی بزنی که این اعمال قذب بیجاست این خالی کردنه القذبو یعنی قذاب بیجا یفصدل ایمانه ایمان انسان رو فاسد میکنه کما یفصدل خلو العسله کما یفصدل خلو العسله خب اینا خارج از کتاب روایت بعدی اگر کسی دوست داره زمینه اخلاق خوب در فراهم بشه مثل که زمینه فکری خوب و فعالیت سهی عقلی در او فراهم بشه اینجا باید کدو کدوی رسیده بخوره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لعليم علیه الصلاة والسلام كل یقتین فا من اکله حسن خلقه و نظر وجهه و هی طعامی و طعام الانبیاء قبلی دو تا معصوم با هم گفتگو دارن دایلوک دارن محاوره دارن تا امت مرحومه و همه انسان ها حلف حق را اینجا کدوی رسیده شیرین مصرف کن کدوی رسیده شیرین مصرف کن تو سبد قضا و ریزم قضی خانوار باشه هر کسی که این کدو شیرین رسیده رو بخوره اخلاقش نیکو میشه شهرش حالتهای خرمی پیدا میکنه یعنی شادابی مستمر و این طعام من پیغمبر رحمت رسول الله نبوت خاصه و تعام مرسلین قبل از من 303 تا رسول داریم از 124000 نبی و انبیا 124000 نبی که از این تعداد 303 تا رسول که از این تعداد 5 تاش از العزم تسا حالا همه انبیا و مرسلین و اولو العزم همشون چدو می‌خوردن حالا می‌تونیم به صورت خام باشه یا بخارپز باشه یا پخته باشه ولی آبش کم خورشتی آبش کم آب قوره هم اضافه کنی که آغاز بکشه خیلی فواید داره بحث ازدیاد عقل بحث حفظ عقل بحث فعالیت های سعی مغزی بحث کاهش چربی های خون، کاهش چربی های مزر خون، مثل کلسترول بد مثل تریگلیسیرید خون تصالب فهم خود چربی های خون وقتی بره بالا پوست انسان خفه میشه شبیه چرم میشه تصالب فهم بودین خب فواهد زیاد داره مومنا حتی مال شادا بیه پوست یادتونه کفتم پختش هم بخوره به پوستش هم بکشه وقتی که خوش بعد با آب بشوره این دیروز توضیح دارم این هم تو بحار علامه مجلسی جلی 66 چاپ اسلامی تهران جلی 63 چاپ بیروتی جدید صفحه 229 هست امیر المومنین علی علیه السلام فرمودم علیکم به زیت فإنه یک شف المروه و یحسن الخلق و یطیب النفس و یذهب بالبلغمه بر شما باد که روغن زیتون خالص مصرف کنید که خیلی فواید متعدد دارد یکیش چیه مومنا؟ مره یعنی حرارت اضافی ناشی از صفرای اضافی یا لجن صفراوی بعد وقتی این زیاد به شما بیقراری شبونه بیتابی روزانه بیشتر میشه گای اختلالات ذهنی میاره اختلالات روانی و آشفتگی های ذهنی میاره میگیم به سرش زده طرف جن زده شده به سر عامیانه حالا یکی از چیزهایی که این مره رو برطرف میکنه چیه؟ مصرف روغن زیتون تو جیره قضایی تو 24 ساعت یه قاشق پلو کافیه مگر در بعضی شرایط خاص فرض کن شخصی که هم دیابتیه هم چربی های مزر خونش بالاست کلسترول بد تیریگریسید خون هم آنزیم های کبدیش بالاست و هم یوبوسط مزمن دارد حالا میگیم چنین شخصی روغن زیتون تو 24 ساعت دو قاشق پلوخوری بخوره یه قاشق پلوخوری با ناهارش، یه قاشق پلوخوری با شامش قضاهاشو بدون روغن درست کنه تصاحب فهم بودیم؟ خواص زیادی داره یکی از خواصش مومنا چیه کاهش میو که روایت فهم یکی دیگه از خواصش چیه کلسترول بد LDL و تری گلیسیرید خونت رو پایین میاره روغن زیتون خالص هم. یکی دیگه از خواصش چیه های مفید خونت بالا میره امگا 3 6 بالا میره یکی دیگه از خواصش اینه که ضد اکسیده شدنه یعنی تا دمای 160 درجه حرارت مقاومه مقاومترین روغنه تو بحث روغنهای خوراکی تا 160 درجه سانتیگرادیه چیه؟ مقاومه. اکسید نمیشه که حالتهای سرطانی شخص بگیره به خاطر سوختگی روغن یا سوختگی غذا. کمک میکنه به حرکات دودی شکل روده بزرگ کمک میکنه به دفع و رفع فضولات از رکتوم یا راست روده و پیشگیری میکنه از حالت تلسکوپی شدن رود آنال قسمت انتهایی روده بزرگ. حالا فوائد دیگه هم داره و یوحسن الخلقه زمینه و بستر اخلاق حسنه رفتار مثبت خصلت‌های خوب صفت پسندیده فراهم میشه و یوحسن الخلقه چرا؟ چون کسی که آنزیمای کبدیش بالا باشه یا چربی های خونش بالا باشه کم حوصلگی میاد خمودگی میاد کوفتگی بدن میاد اختلال تو خواب میاد خب زود کور در میره دست بیخه میشه روغن زیتون که تو جیره قضایش باشه یو حسن الخلق نفسش مومنات طیب میشه کسانی که اضافه وزن داشته باشه قند خون داشته باشه چربی خون داشته باشه آنزیمای کبدیش بالا باشه بدنش هم از حیث ریاها و تنفس نرمال نیست نفسش به شماره میفته نفسش صدادار میشه خلط تنفسی داره تو را رفتن نفس کم میاره تو پله ها نردبون که اصلا خیلی دیگه کم میاره که مجموع میشه گای دستش لبه نرده ها بگیره حالش بد میشه حالا اگر بخواسته چهار کیلو هم وز برداره حالش بدتر میشه فضا کسانی که مثلا اضافه وزن دارن یا تنگی نفس آس دارن یا برونشید دارن و یا اینکه چربیای مضر خون دارن از ترانس چربی بالا باید اجتناب کنن یعنی خامه سرشیر کیک خامه‌ای رولت، تعدیل نارنجکی کلفاطچه جگر سیاه روغن جامد تو ها، مز اینا رو نباید بخورن مخصوصا در بین روز علال خصوص شبها تخم مرغ و یا کوکو نباید بخورن چون اگر بخورن نه تنها تنفسشون دوچار مشکله بلکه مبتلا به بیماری توقف تنفسی میشن توقف تنفسی که به اصطلاح امروزی میگن اپنیک اپنیک اغلب دو چهار هنگام خواب میشن آپنه هنگام خواب که در اصول طب داخلی هاریسان جلد اول بحث گوارش بعد بحث ها میره جلو بعد بحث دستگاه تنفس آپنه هنگام خواب که چار و نیم درباره آپنه هنگام خواب صحبت کرد میگه آقا کسانی که تخمه ما آپپس و یا نینرو کوکو مثلا زیاد میخورن و به تنهایی میخورن یا چرب و چلیس میخورن، البیول، مسلوغ، یور سررد و ابتار، تخم مرغ آب پس و یا تخممرغ چرب و چلیسی که نیم رو هست و یا کوکه که شخص میخوره زیادم می‌خوره. بلخص جواب بخوره و دیر وقت. به دو بیماری مبتلا میشه. یکی ازدیاده، گازهای معده و دستگاه گوارش معده و روده و قرغره های شکمی الابتهار یکی هم دوچار رب میشه توقف تنفسی قربون امام رضا برام الفلام جنس نکره محلل الافلام جنس عام اطلاقی عموم البدل اسم جنس افرادی کلی مشکک مشترک معنوی حالا ببین کدامش مبتلا هم میشه مدلش امام رضا فهم بوده تو یک کلمه توقف تنفسی در دم نفس کشیدن، توقف تنفسی در بازدم توقف تنفسی هنگام بیداری توقف تنفسی هنگام خواب ال جدید کدامش میگه اپنه هنگام خواب امام رضا تو یک کلمه حرف حساب هر چارتار فهم بود دنبال امام رعوف باشین عمو جون دنیا و آخرتون بهتر. حالا میخواییم مطالعه و تحقیق کنین کتاب های شرقی اشکال نداره مسئوله تبه داخلی حالیستان هم نگاه کنیم حالا مؤمنا ببینید و و یطیب و نفس نفس کشیدنه چی میشه مؤمنا راحت میشه چه وقتی احساس خفگی کنی به خاطر توقف تنفسی ها استرس داره میگیره، اضطراب داره میگیره، دلشوره میگیره، دلواپسی میگیره، اختلالات روانی که آمده، اختلالات هورمونی میاره ترشح داخلی های مختلف از غدد درون ریز مختلف تعادلش به هم باز و از بدتر شد. درست شد مؤمنان؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام این امام خوبان این احیاگر سلامتی در جامعه این دلسوز واقعی برای پیشرفت بشر انیرا المؤمنین علی علی السلام میفرماید علیکم بزیت فنه یک شفالمره و الخلق و النفس و یذهب البلغم بلغم که مکوس یا مایعات اضافی هست مؤمنا، بلغم اضافی رو هم عبای میبره چقدر خوبه برای کسایی که بلغمی مزاجن یا تراز سنیشون تو سن بلغمی هاست این روغن زیتون حرف اول رو میزنه عنال حسین ابن خالدن قال قلت لعب الحسن الكافم علیه الصلاة والسلام انا ناسه یقولونه من لم ياكل اللحم فلاثه ايام ساء خلقه فقال عليه السلام كذب یکی اومد پیش امام کاظم علیه السلام گفت آقا مردم میگن اگر شخص سه روز گوش نخورا هر سه روز یک بار گوش نخورا اخلاقش بد میشه امام کاظم علیه السلام فرمود دروغ میگن ولكن من لا يأكل اللحم أربعين يوما تغيير خلقه و بدنه و ذلك لانتقال نطفه في مقدار اونی که اوني اینه هر کسی که چل شبان روز برش بگذره و گوشت سالم تازه بهداشتی نخوره این بد اخلاق میشه. این بدنش تغییر میکنه مثلا یکی از تغییرات بدنی چیه مومن ها؟ دوچار کمبود ویتامین آ دوچار کمبود ویتامین B دوازده خب فقر ویتامین B دوازده سبب میشه که دوچار کمخونی کشنده یا کمخونی بدخیم بشه آنمی فقر ویتامین به دوازده محتاج میشه به آمپول های کمپلکس یا به دوازده تو اقسام کمخونی های عارضی یکیش چیه آنمی فقر آهن یکی دیگه چیه آنمی فقر ویتامین به دوازده یکی دیگه چیه آنمی فقر اسید فولیک یا فولیک اسید حالا تو مبارسه ما کمخونی ناشی از فقر ویتامین B12 این کمخونی بدخیمه کشنده است که دردهای جناقی سینه به صورت منتشره آنژینای صدری و به صورت نقطه ای سوزش اگه تو هم با استرس باشی تو قسمت چپ سینه نقطه ای سوزش و همچنین ممکنا دوچار توقف در دم یا بازدن دم میشه تو تنفس تو بحث کمخونی های کشنده همچه بایی میسو یه نفسش نمیاد تنگیه نفس یا آس نداره برونشیت حد مزمن نداره مشکلات ریوی نداره مشکلش به خاطر کمخونی کشنده یا بدخیم که ناشی از فقر بیتامین بدوازده واسه هم فهماشه محصومه بگم اما امام موسای کازم علیستانه رافع مشکلات از جامعه چه از بدنشون چه از رفتاراشون چه از اخلاقاشون ترویج کننده فرهنگ سعی بلایی که احیاگر سنت رسول الله حالا امام کاظم علیه السلام میفهماید کسی که چه روز برش بگذره گوش نخوره اخلاقش تغییر میکنه بدنش تغییر میکنه اخلاقش تغییر میکنه چون یه سری چیزایی این که نیازهای ضروری بدنه تأمین نمیشه تو بحث اسیدهای آمینه اینها مطرح مؤمنان همه اسیدهای آمینه رو که بدن نمیسازه هفشت از اینها رو مؤمنان باید با خوراک و ریزم و های صحیح تأمین کنیم حالا اون هم اصولت به داخلی هاریسون جلد هفت مطالبش و ذالکه مطلب انتقال نطفه آدمی از همه جای بدن بعد از طریق ویزتین بعد تجمع مایه منی در کیسه منی که این طرف پرستاده در بدن مرد حضا قسل جنابت که میکنی همه بدن تو باید آب بکشید از همه جای بدنه بحث جنها یا صفات از یک شخص یا از یک نسلی به نسل بعدی از همه جایی بدن مؤمن میاد. حالا اینجا انتقال نطفه در مقدار چه روز مطلب بعدی. اینا باز بحث های سخته، بحث جنین شناسی، بحث نطفه شناسی، بحث نانا تکنولوژی، تو لقاه مصنوعی، تو غیر مصنوعی، حالا دیده همه بحث زیاد داره. روایت دیگه از امام رضا علیه الصلاه و السلام علیكم به لحم فانه ينبت اللحم و من ترك اللحم 40 یوماء سوء خلقه بر شما باد که گوشت تازه سالم بهداشتی بخورید چون از گوشت که گوش میرویه که عذاله میگیره هر کسی که 40 شبانه روز گوش نخوره اخلاقش بد میشه هر کسی که چهل شبانه روز گوش نخوره اخلاقش مؤمنا بد میشه حالا مؤمنا در زمان ما ماشالله رفاهیات زیاد شده داخل و خارج کشور که از چه مؤمنا گرانید یا تورم و سوء تغذیه هم فراوان همه جای دنیا به خاطر ظلم ظالمین و همه چی رو میخوان انحصاری در بیارن حتی تجارت رو به نهوه کپیتالیسم و اینکه قیمت افت نکنه گایی گندوم تو دریا میریزن گایی همجور قضاهای سالم نفله میکنن که قیمت بازار ارزون نشه این کار بلوک قرب خودشون بهتر میدونن از ما حالا مومن حالا به اینکه گرانی هست تررم هست سور تغذیه این همه سرجاش درست اما یک رفتاره منفی با خود هست در داخل و خارج کشور منطقه و جهان اون رفتار منفی با خود چیه؟ که اخلاق سیعه میاره و دستگاه گوارش و بقیه اعضای بدن رو درگیر کنه پرخوری کم تحرکی و مصرف بیرویه گوشت همه جا فست فود ها هست، غذای صنعتی هست. میگن ساندویچ فروشی هست، اینا. تناب 4 مس خال تو جیبش پوله. به این مغازه میرسه یکی دو تا ساندویچو خوره. به اون مغازه میرسه مثلا پیتزا میخوره. به اون مغازه سوم میرسه مرغ کنتاکی میخوره. به مغازه چهارم میرسه مثلا مثلا گوشت مغ میخوره با یه نوشابه. به مغازه پنجم میرسه مثلا میگه یه کم حلیم بریز داداش. حلیم. یعنی از صبح که اخها پامیشن مومن ها دهنشون می جنبه تا وقتی که شب بخوابن چه قلطی هم چه رفتار منفی یعنی تو دنیا ما اومدیم فقط اینه پر کنیم میگن این بشکست یا آخره؟ شما بزرگواران های شریفی داخل خارج کشور شرافت تو با پرخوری و بدخوری و پختل خوری زیر پا لعه نکن بعد میگه اسلام میگه انسانی انسانیت حفظ کن دو تا نعمت خیلی کفران میشه یکی آفیت فردی و اجتماعی این دو تا خیلی کفران میشه نعمتان مکفورتان اصحط و امن. امام صادق علیه صدی اللہ تو کتب شیعه است با پنج سند این دو تا روایه این دو تا خیلی کفران میشه الحمدلله عافیت، امنیت خب مواظب به خوراک آشاامیددهید باشه. به نف خودت حال اگر زیاد روی در مصرف گوش کنن مخصوصا گوشت قرمز. ذریب خشونت های بیجا به نوع اعمال قذب بیجا در سطح جامعه زیاد می شود. زیرا که گوشت زیاد خوردن زیاد روی در مصرف گوش مخصوصا گوشت قرمز بد اخلاقی میاره تو روایات میگه قصابت قلب میاره سنگدلی میاره یعنی اعمال خشونت های میاره علاوه بر این که ذریب زریب پوسیدگی جدار داخلی کلیات و قسمت گلومورول های فوقانی هش کالیس اینها رو شروع میکنه به پوسوندن به کمکار کردن اوره و کراتین خونت هم بالا میره ذریب به ابتلاعات به کمکاری کلیه و در آینده مبتلا شدن به دستگاه دیالیز بالا میره یکی دیگه مهم از ضررهای گوشت قرمز و مانند او زیاد خوردن ذریب نارسایی های روده بزرگ بالا میره از جمله روده زخمی از جمله سرطان کلان سرطان روده بزرگ یکی از علل اصلیش گوشخاری بی و زیاد سبزیجات و کاهو و کرفس و میوهام که نمیخوره هی برنج سفید بر کنارش گوشت قرمز ای نون سفید، کیک سفید، نون سوخاری سفید، نون ساندویچ سفید، داخل خارج کشور. نون فانتیزی، بدم ای لاش گوش میذاره. کار که نمی کنه موامنا. کشتارگاه که نمی رو موامنا بینه چقدر زحمت داره سر بایدن. یا توی سلاخ خونه که نمی رو پوست بکنه چقدر زحمت داره. خودش که نمی مثلا گندوم تولید کنه یا گندم آرد کنه. یه کم کار میکنه پول تو جیبش جمع میشه ما ده بخور بخور این ابتلاعات تو سطح جامعه زیاد میشه سرطان های کولان زیاد شده موامنا به خاطر بدخوری پرخوری پفتل هم کنارش پوست ماغ میخوره و پوست ماهی میخوره و نوشابه بقلش گازدار میخوره و از این مسخره بازی. ها. برو سن ایچ بخر بیا ببینم برو یک دلستر بخر بیا بله هم گرفته چهار تا سمارتیزم اندازه این بالا از یه عدد در درمیان حالا اعصاب به هم می‌ریزه، سوی تغذیه داره مشکلات روده‌ای مدهی پیدا میکنه مشکلات ریفلکسی نارتی قیروزی معده پیدا میکنه مؤمنه حافظش برداشت اطلاعات از حافظه موقتش کن میشه قذب بی جا داره اعمال خشونت بیجا جا میکنه اصلاً کرمک انگل کرم کرم آسکاریز ممانند او بستر و زمینه تکثیر اینها رو تو معده و روده ها زیاد میکنه قربون امیر علی علی السلام برم تو روایات دانا تو بحث قرار الحکم آمدی از علمای قمر چار و قمری کلمات قصار امیرالمؤمنین المومنین جمع کرده تو دو جل کتاب بعد اونجا مومن میاره میگه این معده و روده خودت رو محل تجمع انواع دود یعنی انواع کرمای مختلف نکن تو انسانی نه اسکلت متحرک یا بشکه ای از حیوانات موزی مرمز گرفتین مؤمن بچه‌ها بستر و زمینه این کلمه و کرمک انگلا خود همین میخواییم ما با کنیم ما یه ماه وقت میگیرم حالا این آسونش اینجا مؤمن گفتن با پرخوری در گوش این کار نکن حالا تو روایات شیعه میگه از سه روز کمتر گوش نخور حداقل هر سه روز یک بار گوش بخوری اب نداره نمیگه کار خوبی ها میگه جایزون جایز. هر مدتی گوش بخوریم مثلا هفته یه بار دو هفته یه بار گوش بخوریم نه برای قسم خوردن توش گوش باشه مثلا دو تا تیکه ریز باشه بقیهش زمینی و لوبیا و سبزی و آب و. این که آب گوش نیست هم پهلبونی حالا میگیم هفته یه بار گوش بخوریم یعنی پهلبونی خدا انشاءالله همه رو پول کنه گوشت هم ارزون بشه ملت شریف بیتونن گوش بخورن <تصفيق> حالا مومن ها خلاصه گوش باشه نه گوشت ریزه. حالا هفته یه بار مومن یا دو هفته یه بار بسیار خوبه اما اگر چهه روز گذشت پول یخدون پسنداز یخدون یعنی نداره پول نداره پسنداز هم نداره حقوقش هم فرض کن نرسیده. پاداشی و تشویقش هم فرض کن نرسید حالا تو روایات چی میگه میگه اگر چه روز برات گذشت گوشت نخوردی ها برو قرض کن گوشت بخر بخور خدا قرض رو عدان کن وعده خدا و وعده معصومه و این الله یخل فول می در آن واحدا چه وعده‌ش اینجوری شکمی باشه، ولی که بدن ضعیف نشه چون بدنت مرکب روانته و روان مرکب روحته. تصاف فهم بودین؟ یعنی که مرکب ضعیف نشه، خدا به فکرته و تخلف از وعده نمی‌کنه. انسانی میخوای زندگی کنی، اسلامی میخوای زندگی کنی، ایمانی زندگی کنی، رعایت اصول انسانی بشه بماننده با باز بازم خدا تخلف از وعده نمیکنه. میگه منجی واقعی عبرمرد واقعی که مولا صاحب زمان ها میرسونم قصه هادی نخور هادی واقعی که مولا صاحب زمان ها میفرستم اینالله لا یخلف المیعاد خدا تخلف از بعدش نمیکنه. حالا مومنا اگر کسی دوست داره به این مهدی موعود برسه باز زحمت بکشیم مومنا علاوه بر بدنش رو که باید سالم نگه داره تا پای شهادت عقل و فکرشان باید سالم نگه داره روحیات و خلقیاتشان باید سالم نگه داره مخصوصا تو روابط عمومیا بین فامیل و غیر فامیل حالا این فرمایشات ارزشمنده امیرالمومنین علی علیه الصلاه ببینیم مؤمنا کلام العاقله قوتان شخص عاقل مؤمن و مومنات شهیان اسناحش داری کلام العاقل قوتون این خوراک که مغزته چرا؟ چون گفتارش علم یقین فرضی بافی کنو حساب احتمالاتیه هر بزنو جمال زنی توش نیست نیت. علم و یقین حکمت تصادف فهمید همش به نفعته کلام العاقله قوتون و جواب الجاهل سکوتون جاهل یعنی کسی که بی عقله به کار نمیندازه جاهل به معنای کم سواد یا بی سواد نیست حالا فرض کن این کلید جاهله یعنی کسی که بی میگه با بی که نمیفهمه شما صد بارم حرف سعید تکرار کنید این نمی کشی نمی نفهمه اول باید ظرفیت اینه ببری بالا عقلش فعال کنه ولی تا وقتی که تو پتانسیل و نفتگیه این نمیفهمه شما چی میگی بیخود کل, کل یک و دو با این نکن زحمت هدر دادی تازه فهمیدی میگه نسبت به جاهل یعنی شخصی که بی سکوت کن و جواب جاهل سکوت کن تصنیف قرار الحکم صفحه 211 حدیث 4078 شرح آقا جمال خانساری بر قرر الحکم جلد 4 صفحه 626 شرح آقا جمال خانساری جلد 7 صفحه 260 این یکی از روابط عمومیای سعید تو های اجتماعی یکی دیگه از روابط عمومیای سعید تو رفتارهای اجتماعی چیه یعنی که شخص آخر چیزی که از دیگران می‌بینه یا می‌شنوه زود که بدبینی نمیزنه که زوم کنه رو همین سر سوزن ای با نقصش بلکه خوبی های افرادو میبینه از هم از هم کلاسی از هم محل از فامیل غیر فامیل و, و همکار غیر همکار داخل کشور خارج کشور خوبی هم ببین رضا میگه نصفی و نیمی از عقل فعال کاربردی در اشخاص عاقل چیه؟ احتمالون فرمای شده ارزشمند امیر علی علیه السلام العقل و نصفه احتمال عقل نیمی از عقل فعال کاربردیش احتمالات به گونه سعیه یعنی تعمل و تفکر میکنه و احتمال به خوبی میده چون خوبیای افراد رو میبینه و مد نظر داره و ارتقاء سطح فرهنگی در جامعه میکنه و اعتماد سازی میکنه سپس آموزش سهی میده در ضمن معاشرت اسلامی و رابط عمومی سالم خب نیمی از عقل فعال کاربردی در شخص عاقل چیه؟ احتمالون و نصفه تقافل نیمی دیگه از عقل فعال کاربردی چیه؟ تقافله تقافل یعنی فرض میکنه چیزی نشنید مثلا اگر این یک شخصی باشه یه مختصری رفتارش منفی یا اخلاقش سیعه یا مثلا کم حوصله یا مثلا پرخاشگر فحاش مثلا مثلا یه عیب نقصی داره این شخص عاقل همه تون این شخص عاقل فرض میکنه چیزی نشنید فرض میکنه چیزی ندید به روح خودش نمیاره این بذاره یکم خونک شه امروزی ها بشه آروم بشه بعد غیر مستقیم ها این رو هدایت میکنه نمیگذاره تو نارسایی باقی بمونه و تو لجن دست پا بزنه و تو گرداب فساد دست پا بزنه و به پایین سخوتش بیشتر بشه نه وقتی که اولی که این داغ کرده علیکی بی حوصله پرخاشگره و مانند و وفتارهای منفی داره اونجا چگاه کنیم مؤمنان تقافل میکنیم چیزی نشنیدی چیزی ندیدی این که آروم شد همه بدی به راهاش گفت همون شد سلام علیکم حال شما خوبه خسته نباشیم به نظرم غریبی ها هم. نکنه همدیگره نمیشناسیم مشکل اینه که قز داری نکنه گرس میخوایی بیایی خونه ما دعوت کنیم نار بخوریم مرد میدون میخواییم همچون امام حسن مشتبه علیه صلات و سلام که این شخصی که از شامات اومده بود به دیکتهی بنی اومیه این کوکش کرده بودن شروع کرد. بدی بدیبی را گفتن امام حسن مشتبه علیه صلات و سلام بیمیم من نصفه تقافل وقتی که همه بدی را این تمام شد برازش ساکرم مثلی که قریبی نکنه جان نداری، نکنه گراستنگی به خونه ما مهمون اینا. ما موامنا ست درجه برگش. بعد کم کم پشیمونه پشیمون شد. بخواه امروزی ها سره اشتر درجه برگرد. قبلش سرباز بنیامعیه بود. بعدش سرباز معصوم. ولایت حقه. دیدی موامنا تقافل مخواهم بگیم. تو خانه و خانه و ها. چون بحث خلق بودیم ها. الفنامه الخلق جنسه. میخوام بگم اخلاق سیعه بر کنار اخلاق حسنه بیاد رفتار منفی بر کنار رفتار مثبت بیاد خصلت‌های ناپسند یعنی صفت مندگار ناپسند بر کنار خصلت‌های خوب بیاد رفتارهای منفی بره کنار رفتار مثبت بیاد و مانند او مؤمنا های کاذب بره کنار عرفان ولایی میاد که بر اساس علم و حکمت و مصلحت واقعی افراد در دنیا و آخرت این عرفان رلایی اهل بیت اسمت و طهارته مؤمنان یک مطلبی دیگه که اینجا هست اینه که با مردم که با هر دین و مذهبیه چگونه رفتار کنیم با هر دین و مذهبیه داخل خارج کشور. اینجا یاتون یا باشه با مردم ولو هم مسلک شما نباشن باید مدارا کنیم. مدارا کردن با مردم یعنی همراهی. نه اینکه مثلا جزوه جماعت فساق بشم. پس فس کن این کلیدا فاصلم فاصلم فجررم. نه نه اینکه منم برم ولنگار بشم یا بی بند یا جزوه اشرار. نه معنای مدارا یعنی همراهی با مردم کن و سطح تربیتی ادبی فرهنگی دینی اخلاقی و مانند او رو بیار بالا اما این مدت زمان میبره مثل تحقیقات که زمان میبره تربیت صحیح رشد یافته داشتن یا در دیگران ایجاد کردن زمان میبره این زمانی که میبره سواب شهید داریم رضا تو روایات شیعه میفرماید اگر در راه مدارای با مردم و رعایت تقیه مرحوم بشی و هو الشهد شما بزرگوارا هر کسی تو هر رشته تخصصی که مؤمن هستی یکی هم گوینده که مباحثه با شما میکنه اگر در راه طلب علم نافع تحقیقات و پجوهش نافع اگر آدم در این راه مرحوم بشه سواب شهید داره نحجل فصاحل صفحه 191 حدیث 194 ازا جا الموتو به قالب العلم مات و هو شهیدون گایی بعضی ها شعر میخونن باب شهدار بستین چینچن بابا جون باب شهدت هیچ وقت بسته نیست به شما از شود که کسی که در راه انجام وزیفه دارم خلقیات حسن و احسن میگم اول آخر آدم یه روزی مردنی. اول آخر یه روزی میمیری یه روز نبودی حالا هستی یه روزی هم نیستی اول آخر یه روز مردنی مثل همه مخلوقات ستاردان سیاردان افول دارن و سپس نابود میشن حالا یکی جمع انسان چه بهتر اینه که مردنت همجور علکی مثل بقیه مخلوقات نباشه مردنت حسن باشه یا احسن مردنت حسن باشه یعنی مؤمن بلفل موحد بلفل باشی و باقی بمونی وظیفه شناسه تکلیف مدار حق مهور که پس از وظیفه شناسی عمل بر طبق وظیفه میکن بیگه زمش مشغول به تکالیف شرعیه نیست. همه رو انجام میدونی. اینجا مؤمن بلفل، موحد بلفلی وقتی که حضرت اسرائیل تشریف میاره جون بگیرم بگیره حالا تو روایاتش یه میگه. میگه این مومنین بلفل ها مثل یک سیب قرمز معتر مثلا بو کنه یا مثل این که یک گل معتر غیر سمی خوشبو که بکنه. کنه میگه روح از بدن مؤمن اینجوری مفارقت میکنه این شد موت حسن قربون این شهدای عزیز برام حالا فضیلت چنین شهیدی که انتخاب احسن کرده چیه تو روایات شیعه میگه فضیلت شهید قبل از ظهور مولا صاحب زمان بیشتر از شهدای بدر و احوده. و فضیلت چنین شهیدی بیشتر از اینه که یک مردی پنجاه فرزند پسر تربیت کنه همه خوب باشن و بعد از ظهور امام زمان در رکاب امام زمان باشن و با دشمن بجنگن میگه فضیلت یک شهید قبل از ظهور از این پنجاه فرزند پسر خوب بیشتره اگه ارزه نداری خودت که در راه خدا در راه انجام وظیفه طبق فرمان ولایت حقم انتخاب احسن کنی و شهید بشین اگر خودت ارزه نداری چرا شهدای عزیز رو با لفاظی یا انگماک چسبوندن میخواید از چشم مردم بندازی لذا در کتاب های مختلف از جمله مسکن الفاد فی فقد الاحبت و ما ماد ثانی روایاتش نگاه کنیم که حسرتون توضیح داد. مومنای بلفل موحدین بلفل که عقیدتون خوبه توحید عقیدتی و صفاتی افعالی دارید که این قسمت افعالی که توحید افعالی داریم؟ بحث مباعثات علمی نافع تدریس نافع امام جماعت نافع هر کسی هر شغل شریفی داره محقق کرد، حالا در راه انجام وزیفا که مرخوم بشی ها؟ ولو رو فرش خونت باشی سواب شهید داره والله ما الشهيد الا شیعتنا ولو ماتو على فروشهم وسائل جلد 11 چاپ اسلامی تهران طبع آل البت جلد 15 صفحه 31 حدیث 4 خط تیره نوزده ازار و شیخ توسی جلد شیش صفحه 126 ملازل اخیار که کتاب فقهی علامه مجلسیه 16 جلد ملازل اخیار جلد 9 صفحه 334 اول آخر برگ برنده دست مومنین و مومنات و شیعان اسلام عشریه که در چارچوب اسلام ولایی عمل می کنن. خود سرانه عمل نمی کنن. بی مدیریت متمرکز خیر عمل نمی کنن. هر مرج ندارن، اقتشاشگر نیستن، فرصت طلب مرموز نیستن. همه اهل رحمتم چون احیاگر سنت رسول الله که رحمتا للعالمین انسان های عالم اگر بیان پیرامون ولایت حق وحدت داشته باشن، تازه دنیاشون هم خوبه. بدنها سالم، افکار سالم، روحیات سالم. تصمیمات به موقع و سعیه سالم عمل کردهای سالم. حالا جامعه زنده میشه. جامعه قبل از ظهور امام زمان جامعه مرده است. مرده به فساد. مرده به جه که بیعقلیه. نظام اخلاق رزیله رواج دارد. رفتارهای منفی رواج دارد. اما هر کسی که دوست دارد حیات طیبه داشته باشه باید در چارچوب اسلام ولایی گوش به فرمان امام معصوم یا امام عادل باشه همه شما رو به خدا میسپارم با ذکر صلوات و محمد و آل محمد